الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم احد في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا و والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین عبل غاسم محمد صل الله فعالیه و عالیه و سلام. سیما ناموس اتهر و امام العصر خود ابن الحسن العسكري المهدي عروض ما را مطلع کن. خدا والعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان لا قيام يوم الدین. خوب ارایز ما در این شبهای نورانی ماه مبارک رمزان یه شرح کوتاهی بر نامه امیر علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبا علیه السلام در نه البلاغه نام سی و و شبهای گذشته در این کلام حکمتامیز امیر المؤمنین علیه السلام صحبت میکردم که به فرزندشون میفرماین وعلم یا ونی انکه انما خلقتل الاخره ولا لدنیا ولا الموت ولا حیا به پسرش میفرماید که بدان که خداوند تو رو برا آخرت خلق کرده نه دنیا هدف آفرینش تو درات میگه میفرماید که هدف خلقت اینه که انسان در آخرت زندگی کنه نه دنیا و خدا تو رو برا مرگ خلق کرده نه برا زندگی بعد خودتو برای اونجا آماده کن. اینجا می‌فرماید سرایی که باید ازش کوچ کنیم و ازش توشه برداری حالا هرچقدر واقعا وقت اجازه می‌داد شب‌های گذشته تو این فراز صحبت کردیم. دنبالش میفرماید که حالا یه کلام واقعا زیبای دیگه از امیر که جان ما به صدای امیر میفرماید می فرماید که و ترید الموت حالا من دنبالشم هم می همین خود این خیلی کلام فوقلادهیه و انک ترید الموت با ته دستدار ترید ترید حالا من ول لغتشو معنی کنم به شخصی میگن که تحت تعقیبه دنبالش هستن که اونو بگیرن تو واقعا یکی از القاب امام زمان تریده یه که زیارت نماش هست که به امام سلام کردن به عنوان کسی که تریده این کتاب نجم و یک کتاب خوب راجب امام زمان ارواغ و نافده. مال میرزا حسین نوریه رضوان الله تعالی میرزا حسین نوری استاد آشخباس قومی بوده صاحب مفاتی یکی از شاگردان برجسته او همین آشخباس قومیه که این استاد و شاگرد تو حرم امیر المومنین دفنند کنار هم نجف گرفتین تو حرم حضرت امیر یکی از علمایی که اونجا دفنه همی آشق حباس قومی صاحب مفاتیح و استادش میرزا حسین نوری میرزا حسین نوری یک کتابی راجب امام زمان داره به نام نجم و ساقب که خیلی کتاب فوق فوقلادهیه خیلی زحمت کشیده حالا دیگه قفلت از منه ظاهرا سد و و دو لقبه امام زمان رو تو ابتدای این کتاب جمعوری کرده و شهر داده از تو قرآن و روایات و زیارتنامه ها سد و و دو لغب یکیش همین مهدیه مهدی لقب حضرت اسمش نیست نهی کردن که اسم امام زمان رو بیارند در زمان قیبت پیغمبر می که که اسموهو اسمی اسمش اسم پیغمبره این توجه بود فهمه و کنیتوهو کنیتی پیان برمی فهمه کنیش هم کنیه منه حالا یکی شب مهدیه حالا بحث ما امام زمان نیه. حالا ی... یکیش تریده همین که الان اینجا حضرت امیرم رو در مورد امام زمان نهی برده ولی ترید یعنی کسی که دشمنان خدا در تعقیبشن اونو بگیرم بکشند اونم از ترس جانش رفته مخفی شده همش فراریه دیگه امام, امام. به امام صادق گفتن که خب این آقا چرا قایب میشه چرا قایم میشه تو نمیاد تو مردم حالا شما میگی وقت قیامش نیست خب هر وقت وقت قیامش شد قیام کنه ولی چرا بین مردم نمیاد غیبت یه چیزیه هنوز وقت قیام نشده یه بحث دیگه است امام اینطوری بود بین مردم زندگی می هر وقت مردم به اینا می گفتن چرا قیام نمی کنی می گفتن ما یار نداریم زمینش نیست حالا اب ندارد امام صادق چقدر اومدن بهش گفتن چرا شما قیام نمی کنی می من یار ندارم امام زمانم می تونه بین مردم باشه هر وقت بیان بگن آقا چرا قیام نمی کنی بگه حالا فیلا وقتش نیست گفتن چرا این مرد غیبت میکنه چرا همش مخفیه حضرت اشاره کرد به گلوش اینجوری تاونام <تصفيق> میکشنش دنبالشن همش در تعقیبه همین آمریکایی‌ها اول که اومده بودن عراق اون اول زمان بوش به هر عراقی که می رسیدن می اگه خونه امام زمان رو به ما نشون بدی جایزه خوبی دارید. داری داری. <تصفح> آخر اطلاعیه زده بودن هر کی یه خبر مبسقی از امام زمان به ما بده ما جایزه خوب بهش می این توجه بفرمیدیم. امام اشاره کرد. میکن. راوی از اینایی بود که خب سطحی فکر می‌کرد و از اینا هستند. یبنی رسول الله یعنی مردم امامم می کشند یه می کرد گفت مگه یازده تو باباشو نکشته گم بگه این اولین امامیه که شهید می شود لیس اول قاروقت کسرف الاسلام زربل مسئله عربا میگن این اولین شیشهی ای نیست که تو اسلام شکسته می شود مگه امام حسینو نکشتند؟ از امام حسینو اگه شما ناراحت نمیشین مسلمونا کشتند، من یهودیان هم. امام حسینو یهود نکشته، نصارا نکشتند، اهل قبله کشتند. اگه باز تعامل از من میکنین، براشفته نمیشین، شیعه ها کشتند، مردم کوفه کوفه مرکز شیعیان بود جامعه تاریخ ببینید. ببینین اصلا علت این که عزت امیر کوچ کرد اومد کوفه چون میخواست بین شیعان باشه دید مدینه طرفتار نداره نمیتونه حکومت کنه مدینه همه طرفتار خلفا بودن حالا ممکن تک و توک با اهل ب... ارتدن ناس بعد رسول الله الا سلاستن. امام ستون امام صادفان همه رفتن طرف خلفا مگه سه نفر با علی بودن تو مدینه سه نفر با امیر المونی سلمان یکی عبوزر یکی مقداد راوی گفت اممار دیگه اممار چی شد پس حضرت فهموندن الاممار و سمه رجعه اممار بعدن توبه کرد اونم اضافه شد دیگه اون آخر هفته شده بودن که تو تشیج نازه هست زهرا اون هفته اومدن تو مدینه شیعه نبود اصلا الان هم نیست الان بریم مدینه آقا نادر شیعه پیدا بشه اون موقعم نبود شیعیان کجا بودن کوفه حضرت کوچ کرد اومد کوفه اقلا چهار نفر از ما حمایت کنند به ما اختدا کنند خب همین کوفیان گشتن دیگه اصلا همین که مرکز شیعیان بود همین ها سپاه فرستادند دیگه امون ندادن که از شام لشکر بیاد گفتند که ما خودمون کفایت میکنیم دیگه نیازی به لشکر شام نید و از شام یه نفرم هم نیومد همین عمر صد کجایی بود؟ همین شم کجایی بود؟ رهبر معظم انقلاب تو نماز جمعه از شم تعبیر کرد به جانباز سفین <تصفيق> این کسی بود که در رکاب امیرالمومنین در صفین می جنگید و جان هم شد نه همین بودن که برای است علی می جنگیدند گو ترید حالا می تریدو معنی کنم ما ترید یعنی کسی که همه دنبالشن دخلشو بیارد حالا ما هم ما میگیم مهدی بیا مهدی بیا بیاد معلوم همیالان بیاد بگه من حجابای دخترای شما رو قبول ندارم دعوا میشه میگن آقا وازا دم میگن جمهوری اسلامی گرم اون گفت قبول داشتیم این چه میگه اصلا میگه من قبول ندارم میگه اصلا بگه فقط حجاب زینبی تمام خانوما دشمنش میشه الانم که میگن بیا حاجت دارن بنده های خدا مثلا دخترش مریضه گریه میکنه گریهش مال این نیست که امام زمان میخواد کسی که امام زمان میخواد بعد اجاب داشته باشه به خدا جون اگه شما امام زمان میخواین بعد نماز شب بخونی. نماز شب خونا عاشق امام زمانه آدمی که نماز صبحش قضا میشه که امام زمانی نیست بعد دین و دوست داشته باشی بگی آقا بیاد چی بگی من میخوام نمازو بهتر از این بخونم نمیشه اون بیاد کمک کنه اینه دیگه به شما میگه من میخوام دین داشته باشم الان نمیشه بیاد کمک کنه بهتر از این ما دین داشته باشیم. مال دیندارات مال اوناییه که غم دین دارن نمیگن دولت کشف جاب. تو همین تهران آقا شعار میدادن یکی رئیس جمهورش کشف جاب کنه الان کسی بگه من رئیس جمهور رای اول تهرانو میاد اینکه امام زمانینی، آدمی که به کشف اجاب راعی میده، اینکه عاشق حجت ابن الحسنی، شما میگی آقا من خودم دیدم تو دعای ندبه گریه میکرد، خب دخترش سرطان داره. دخترش مریضه، داره ناله میزنه. نالهش مال این نیست که دین میخواد، نالهش مال این که حاجت داره. خیلی ناله ها آقا ماله حاجته. مال گرفتاری ترید ترید به کسی میگن که تحت تعقیبه حالا امام ببین تعبیر رو نگاه کنید اینکه میگم جان ما فداه امیرالمومنین به سرش میگه انک ترید الموت میگه بدون مرگ در تعقیب توه میخواد شکارت کنه ببین مثل سایه دنبالته میخواد یه جا کار بسازد ما،, ما آقا ترید مرگیم یعنی مرگ دنبال ماست حالا یکی رو تو جوانی شکار خیلی خبیطابیر قشنگی ها یکی رو تو بچگی شکار میکنه نمیذاره جوانی رو ببینه چقدر رو مرگ تو بچگی شکار کرده و نذاشته اینا جوانی رو ببینن. یه در تو جوانی شکار میکنه و نمیذاره میانسالی رو ببینه یه در رو تو میانسالیش کار میکنه نمیذاره پیری رو ببینن یه در رو کار میکنه میکند خدا آقا از دسته ای نمیتونید قصر در کنی ترید الموت حالا من میگم چرا شما از دست مرگ تا حالا زنده نجات پیدا کرد ملائکه افسد میکند خدا یه ملائکه ای رو معمور کرده حافظ منند حافظ شما میگه این از مرگ حفظ کن تا اجلش برس اونا حفظ میکنن به خدا آقا بدم رندگی کنی حفظ میکنن بعضی بعد با موتور راه میرن که حفظش میکنن میگن که شلوغ نکنن و اجلت نرسیده بلند میگن زدی داری شاخ به شاخ میشی با یه خورده فرمونو میگیره اینو میگه بعد تو میگی میلیمتری رد کردم نه رد نکردی ردت کردن خدا به خدا رد نکردی عجلت نرسیده بود حالا مرنی اون که زخمی شدن چی شده؟ اما ردت کردن یک... یا آقای بود بد را را اندگی میکرد لایی میکشید اینا میگفت هر ملکی رو میخوان تنبیه کنن میفرستن معمور منشه میگفت تمام معرو... معمورهای من زخمی و زیلی هم میگفت درباد آقون همه چشونه بستن خدا شکر آقا تا اون ج... اینطوری نه که شما بگی آقا من شانس آوردم تا حالا سرطان نگرفتم ولی رفیقم بد شانسی آور نه شانسی نیست اون عجلش رسیده بود ملائکه رفتن کنار تو هنو عجلت نرسیده اونها وای فدادن نه شانسی نیست مقدراته خدا شکر آ کسی بگی شانس یکی بگم معلوم بگم آقا من شانس آوردم تا این سن رسیدم سرطان نگرفتم سکته استقالبی نکرد نه شانسی نیست. هنوز عجلت پر نشد هنوز پیمونه پر نشد عین بذار قرآن <تصفيق> بخونم نه چا میکنیم این خدا چه چجوریم گفته عینما تکونو یدرک کمول موت ولو کنتم فی بروج مشیده میگه هر جا باشین عجلتون برسه مرگ میاد شما رو شکار میکند ولو تو برج ضد زد زلزله نمیدونم الان ده ریشترم بکن شما آقا اگه برج درست کنی ده ریشترم زلزله رو تعمل کنه استقلبی میکنی میبیری <تصفيق> بابا تو چه میکنی مرد حسابی زلزله که حالا یاری سال یه بار میاد قلبی رو چیکار میکنی <تصفيق> سکته مغزی رو چکا میکنی بعدم هم همش که نمیتونی تو برج باشی میای نون بخری زلزله میاد مگه حالا امریکام شماها برج درست کردی نمیمیری یکی اومده دو تا نون لواش بخرید سوار موتور هم هست مگه <تصفيق> زلزله اون لحظه میاد با موتور میره تو یکی تو تونل خدا پیش نیا تو تونل داری میری زلزله میاد این همه آبار رو سرت خراب میشه مگه برج برج مرحب سنون میکنه عینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده مرگو یکی دیگه بخونم قل لن ينفعکم فرار، ان فررتم من الموت میگه یکی از جاهایی که فرار به شما هیچ سودی نمیده اونجایی که شما از مرگ فرار میکنید کجا فرار میکنید تو همین تهران یادتون نیست که این صده میزد با موشک میزد میومد بمباران هوایی میکرد اونایی که به سننمان یادشون دیگه یه حده فرار میکردیم تو جاده تصادف میکردم میموند اگه میمون اینجا هیچیش ای ده میشوند عجول بود فرار میکرد میرفت تو جاده اونجا تصادف میکرد ما که مونده بودیم تهران هیچ از دماغ اونم خون در نیم ازرایل میگن اومد یکی رو قبض روح کنه به این همسایش یه نگاه چپی کرد خودش رو بهش نشون داد اینم اومد پیش جناب سلیمان سلیمانم ملائکه همه تحت امرش بودن باد و همه در تحت امرش بودن گفت امرو ازرایل به من نگاه چپ کرده من فکر میکنم شب میخواد بیاد سراغ من گو من از دست این نجات میدی گفت چی کارت کن گفت به باد ام کن منو ببره هند پیدام نکنه گفت میاد سر قرار پیدام نمی کنه سلیمانم خندش گرفتید مردم چه جوری راجب مرگ فکر میکنن به باد گفت ببرش هند چند وقت بعد ازرائیل دید گفت آقا تو چرا چپ به مردم نگاه میکنی خب تو که ماموریت نداری تند به مردم نگاه گفت نه من تعجب کردم گفت تو نامه عملم خوندم که شب باید برم هندین رو روح کنم این دیدم اینجا <تصفيق> گفتم این با جتم نمیتونه بره اونجا این, این نوشته چیه این اینجا چی کار میکنه گفت چی شد حالا؟ گفت رفتم اینجا سر قرار ایستاده. <تصفيق> خدا همینه میگه فرار کم من همونجا میام هم سراخت بود انکت ترید الموت خیلی جمعه اجیری هست میگه مرگ تحت تعقیب توه میخواد مثل سیدی میمونی که اون میخواد تو رو شکار کنه اونم مثل اقاویه که میخواد سید رو شکار کند حالا تا کجا زورش پرسه یه وقت تو بچگی کار رو تو تمام میکنه یه وقت تو جوانی چقدر بقید جوانا امیدوار بودن میون سالی رو ببینن مرگ امونشون نداد چقدر اینا زیاد بودن چقدر دوستان ما بودن ما رفته بودیم قد سال خونه صبح به من زنگ زدن گفتم بیا یکی از دوستان جوان ما گفتم ایست قلبی کرد تمام کرد بیا میشورنش جا من رفتم اونجا دیدم رفیقاش بایی زدن میگن دیشب با هم داشتیم آبگوشت میخوردیم با ترشی و مخلفات گفت چقدرم میخورد چقدرم سرحال بود حالا این دیشب بود دیگه. چقدر آدم آقا جوان بودن و به اونا امان نداد شکارشون کرد نزاش میون سالی رو ببیند ببیند به خاطر این میفرماید تو ترید مرگی. لا ینجو منه میگه هر کی از این مرگ فرار کنه محال از دست این نجات پیدا کنه <تصفيق> کی نجات پیدا که؟ شما یکی رو نشون بده ببینید یکی رو بگین آقا این الحمدلله الان هزار ساله که از مرگ فرار کرده و نجات میده کی تونسته هر کسی از این فرار کنه نجات پیدا نمی‌کنه ولایفوتو طالبه میگه اونی هم که مرگ طالبشه از دستش نمیده هیچ کسی رو که مرگ طالب او بوده از دست نداده از دستش در نرفته ولابد انه مدرکه آسمون بری زمین بیای بلاخره مرگ میاد خفتت میکنه <تصفح> این من فکر نمیکنم تو این جلسه کسی باشه که تو این مطالب شک داشته باشه که یه روزی مرگ سراغ ما میاد و اون معلوم نی اون روز دور نزدیکه و چه جوری میاد شما آقا کسی هست تو این مجلس بگه که مرگ من دوره اشکال نمیتونه بگه هرکی هم بگه از رو جهله بگه آقا من تا 80 سالم نشه نمیرم اگه بگی همه می هم میگن آقا 80 سال نشه نمی میری توجه در بچه我ی اصلا من Alla شما بگم تو مارمزون سالبد من نمی میرم اصلا همه می خندن میگن آقا تو تو مارمزون سالبد نمی میگم به حضرت عباس من تو مارمزون سالبد میگن آقا نه قسم نه تو باح از تو نمی میره تو مارمزون س بعد نمیدونیم چجوری میمیریم <تصفيق> ما نمیدونیم کجا میمیریم چجوری میمیریم کتی از آقا بدوند کجا میمیرد به خانومش گفتش که چایی رو بذار مارم از اون نبوده برم یه دو تا سنگه که دروخش بگیرم دارج. یه صوبونه مشتی با هم بخوریم رفت دیگه بر <تص> و هنوز خانومیش منتظر است که دروخشخاشو بیاره. انیرا رو گذاشته. <تصفيق> میگه الان حاج آقا میاد. حاج آقا کجاست؟ الان زیر خاک. یعنی شما نمیتونید تضمین بدی آقا من سحری امروز میخورم. نمیدونیم دوره، نمیدونیم نزدیکه، بعدا نمیدونم چه جوری میمیریم. کجا میمیریم؟ نوعش هم نمیدونیم. سکته میکنیم سرطان میگیریم تو بیمارستان میفتیم تصادف میکنیم نمیدونیم حالا چی میخوام بگم با این مقدمه امام میفرماید که حالا گوش بدین این... با این مقدمه چی میخوام بگم امام میفرماید فکون منو علا حذر ان ککه و ان تعلى حال سیئه خیلی فوق العاده گفت میگه پس به باش خوب برین بدین باش یه وقت مرگ سراغت نیاد تو مشغول معصیت باشی آقا واقعا باید بگیم جان ما فدای امیرالمومنین ببین پسرش آقا چه جوری داره نصیحت میکنه یا شما مشغول معصیت آقا مرگ میاد سراغت بدترین مرگ بدی نه اگه میگن که اگه میگن کسی اول ما صدقه بده به مرگ بد نمیمیره بعضی خواگرام مثلا مرگ بد اینه آدم از هواپیما بیفته تیک تیکشه بعضی خواغم گرام مرگ ب... نه این مرگ بدی نیست که شما داریم میگیم مشل از هواپیما بیفتی مثلا امام رضا میاد بغلت میکنه زائر امام رضایی شما آقا رفتی کربلا شستشو کردی صفا کردی داری بر میگردی ببخشید من شما ممکنو ناراحت میشین خوشتون نمیاد از طبک صحبت من ولی میخوام میگم این مرگ بد نیست از کربلا داری میای با ماشین شاخ به شاخ با تریلی تصادف میکنی امام میاد بغلت میکنه حسابت دیگه با ابی عبداللهه میگه زائر من بوده آیون شما از اونجا که از در خونت راه میوفتی زائر امام به خدا ایون همون چمدون دونتو که میبندی از در خونه میایی بیرون خدا همه گناهاتو میبخشه میگه این عزم کرده بره کربلا حسین ابن علی رو زیارت تو ظاهری اصلا تو رو تو پر قوم میبرند خودت هم میپهمی شما یه صبح قسل کن به قصد زیارت امام حسین از خونه ببین چه حال خوشی داری چون داری به طرف خدا میری هر وقتی طرف امام حسین میومد از خجالت سرشو از از, از, از, از, از از سر از بلند کن طرف خدا داری میایین چرا میگه چرا سرت اینو میبایین ببین میخواد بگید چرا خجالت میکشی رو به خدا میری اونا باید خجالت بکشن که میخوان منو بکشن اونی که میخواد منو بکشه مثل شیر وایساده تو که داری رو به خدا میکنی خجالت میکشی سرشو آورد بیرون حضرت فهمیدن ارفع راسک یاهور و سرتو بلند کن رو به خدا میری با افتخار بیا گفت خدا توبه منو میپذیرد گفت بله که میپذیرد <تصفيق> رو به من کردی بله که میپذیرد خدا آقا توبه منو میپذیرد چقدر آقا این نیر تبریزی خوب گفته چقدر بعضی شوهرها خوب شعر میگن گرد دوصد جرم عظیم آورده ای قم مخور رو بر کریم رو بردهی رو به خدا میری اینا چیزی نیست که اونی که رو به خدا میره که اینا چیزی نیست باید این همون قدم هر قدمی که بر میداری آقا خدا گناهاتو پاک میکنه هزار تا گناهاتو میشورد رو به خدا میری تا وقتی که بر میگی در خونه به خدا جوانا وقتتون رو نمیگیرم امام حسین هم استقبال میاد هم بدرقه میکنه تو خوب کوچه، چینومترها میاد استقبالت. خوش آمد بهت میگه. اصلا میرم بهش خبر میدم میگم پسر فلانی داره میاد، خوشحال میشه امام. میگه خب الحمدلله، مثل پدری که دوست داره بچه‌ها بیان دیدنش. پدر چقدر خوشحال میشه الان بهش بگن افطار پسرت میخواد بیاد. مثلا اگه یه وقت بیشتر میدونی کجا خوش؟ یه پسرش غر کرده باشه بگن داره میاد، اونو بیشتر خوشحال میشه. مثلا میگم 20 ساله نیومده، غرق کرده. اما امروز ذلوبیا خریده داره افتار میاد. مثلا این مادر این پدر بالبال میزنند. در خونه رو میشورند، نمیدونم جارو میکنن. میگن پسرمون بعد 20 سال میخواد بیاد. اونا دارن بیشتر خوشحال بیشتر خوشحال میشن. مثلا بچه های بدشون بعدشون بیشتر نگرانند. مادر داره دیگه داره میمیره، چی میگه؟ به دایا چی میگه؟ میگه این پسرای بزرگ من اینا سربذیرن مسجدین اما این آخریه ی خرده سر و گوشش می جنبه جون من و جون این بیشتر سفارش اونو میکنه مادر بیشتر نگران بچه های ناخلفشه بعد میدونه این مادر کی خوشحال میشه اینا همه اومدن سر صفرش به خدا اینکه علی شما این رو اومدی خونه امام حسن اینجا نشستی از همه بیشتر مادرش فاطمه خوشحال میشه اون دوست داره بچه هاشو اون دوست داره گریه کنای عبا عبدالله رو نمیشه آقا شما بال بال بزنی برای امام حسین فاطمه تو رو نقاد تو دوست داره گاهی از عملت بدش میاد اینا فرق میکنن شما به بچت نگو که من از تو بدم میاد هیچ وقت به بچهتو نگه آقا من از تو بدم بگو من دوست دارم از کارات بدم میاد بچه رو آقا ترد نکنین تو دوست دارم بقلش گوه بغل از کارات بدم اینکه داد میزنی بدم میاد اینکه که کفش رو پرت میکنی بدم میاد اما تو دوست دارم به خدا جوانا فاطمه به شما میگه من شما رو دوست دارم گاهی کاراتون منو رو میگنجونه دارم ولی میشه مگه مادر بچهشو نخواد مگه ممکنه مادری بچهشو نخواد مگه ممکنه مادری از اومدن بچهش خوشحال نشد اما چی میگه به پسرش؟ میگه پسرم حواست باشه. یه موقع مرگ در موقع معصیت سراغت نیاد. بله این خیلی, این خیلی مراقبت میخواد. خیلی مهمه. است. اگه کسی جوانا با ایمان از دنیا بره حتما اهل نجاته. شیطان همه تلاشش اینه که ما... بعد من تو رویدم این خیلی خطرناکه. تو روایت دیدم آدم اونجایی که معصیت میکنه ایمان ندارد. مومن گناه نمیکنه. اون لحظهی که معصیت میکنه اونجا ایمان شد شیطون دوزدیده. این ایمانهای ما آریتی داریم آقایون. ایمانهای آریتی، امانتی. یه لحظه هست یه لحظه نیست. مثلا میری تو حرم امام رضا این ایمانه هست. حال میکنی، عشق میریزی، ناله میزنیم. میری کربلا این ایمانه میاد ک میگی به بچه بهشتی اومدم اما خدایی نکرده آقا میری جای دیگه این ایمان ازت میدوزدن راهزن سر راهه راهزن میدوزدن اون لحظه ای که انسان داره معصیت میکنه ایمان نداره خیلی مهمه که انسان تو حیعت بمیره هر وقت دلت ما که اینطوریم آقا ما هر وقت دلمون میشکنه میگیم خدایا مرگ ما رو تو گریه عبی عبدالله پره. مرگ خوبیه مرگ خوبیه هایون اونجا که بگن داشت بلند بلند گریه میکرد جونش بالا اومد مرگ خوبیه همه میگن خوش با ما رو یه وقت بگن داشت روزه میخوند بلند بلند ناله میزد مرگ اومد سراغش اما یه چیزی برای جوانا بگم اونی که میخواد مرگش تو حیعت باشه باید حیعت زیاد بره. نمیشه خواه شما حیعت نیایه بگید خدای مرگ. این خنده داره. میشون باید حیعت زیاد بیای. بگی جون کمک کن مرگ. الان من اینجوری که دارم پیش میرم. امید میره که مرگ من تو حیعت باشه. چون یا من صوبه ایتم یا زور ایتم یا عطره ایتم یا شبه ایتم. آدم احتمال یا میگن داشت وزو میگرفت بره خانمان میگه داشت آماده میشد بره، یا میگن تازه اومده بود دراز کشیده بود یا میگن داشت نوت مینوشت که شب بره بگرد احتمالش زیاد میشه اونی که میخواد مرگش تو نماز باشه بعد نماز زیاد بخوند جعفر تیار آرزوش این بود که با زبون روزه از دنیا بره. با لب تشنه از دنیا بره. با شکم گرسنه از دنیا بره. همه ای عمرش روزه بود. نظر کرده بود تو سفرم روزه. شما نظر کنی میتونی تو سفرم روزه بگیری. نظر کنی دیگه. مهلا نظر کنم. نمیگم شما بکنید. نذر کنم تا من زندم روز عید رو روزه میگیرم. تو سفرم باشم باید بگیرم. میگن آقا مسافری میگن مسافر نزر کرده نذر کنم مثلا من روز عرفه رو روزه میگیرم تا زندم روز عرفه رو روزه میگیرم تو مسافرتم باید بگیرم حالا من نزر کنم همه عمرم روزه میگیرم تو مسافرتم میتونم بگیرم این جعفر اینجوری بود اما همهش دعا میکرد خدای مرگ منو تو روزه حالا شما میگی آقا آدمی که همیشه روزه است. این چه دعایه؟ حالا دعا میکنه شاید شب مرد شاید شما آقا شب بمیرید بعد افتار بمیرید باز روزه نیستی تشنم نیستی هزار تا هنرم داشته باشی دعا بد بکنی را اگر صد هنر باشد توسل بایدش توکل بایدش ما باید دعا کنیم اصلا شاید یه وقت مریض بشه آقا نتونه روزه بگیره تو مریزی دیگه مرگ بیاد سراغش بعدین در موته شهید شد جعفر روزه هم بود برادر امیرالمومنینا جعفر طیار عمو یکی عموی حسن ابن علی عموی حسین ابن علی هموی زینب کبرا که خیلی مقام داره تو موته شهید شد وقتی خورد زمین خود آدم تشنه آب ازش میره خون ازش میره اتشش زیاد میشه گرمام که بود این عبدالله ابن رواهه رفیقش بود اومد سرشو به دامن گرفت مشک آب رو گرفت سیرابش کرد، همین تا اومد گریه کرد، گفت عبدالله تا که میدونی من یه عمر روزم میخوام با بلای به خدا رو ملاقات کنم با شکم گرس حالا که من دارم به آرزوم میرسم تو میخوای آب بریزی تو کام من آب و پس سر پیغمبر گفت خدا دو تا بال به جعفر داده تو بهشت پرواز میکنه بهش میگن چی آقا جعفر تیار بعد به یکی هم خدا دو تا بال داد بهش میگن عباس تیار عوض اون دو دستی که گفت ازش قد شد امام گفت خدا عوض اون دوتا بال بهش داده پرباز میکنه دو. بعد برای که شما فکر نکنید که عباس با جعفر مقامش یکیه جعفر خیلی مقام داره ما آقا میاند دارم چند دقیقه شد ده دقیقه یه ربع دارم تعریف اونو رو میکنم اما عباس یه چیزی ما نمیگیم جعفر مقامش پایینه نه ما میگیم عباس پشت همین پشت همین جمعه که هم داد گفت ولی خدا به اموی ما یه مقامی میده همه شهده به حال او قبته میخورد یعنی اینو با, با کسی مقایزه نه نگی اینم مثل جعفره نه مثل جعفر نیم اونم بال داره اینم بال دارد اما آقا این کجا چه شباهتی؟ شهده های کربلا همه تشنه از دنیا رفتن همه هم, هم گرسنه نه اما جعفر چه شباهتی دارد به عباس؟ جعفر آب و آوردن تا دم دهنش پَس حالا حبیب تشنه شهید شد آب نبود شاید آب می آوردن میریختن می خورد بره تشنه شهید شد آب نبود اما عباس آب آورد تا دم دهان شریفش پس زد خدا میگه آقا من دو تا بال با امیدم. به او میدم این توجه بمانید میگ خیلی مواظب باش مرگ در حالتی سراغ تو بیاد تو مشغول مصفیتی چه میدونی؟ منا خودش قد... رو منبر روم نمیشه بگم. آدم چه میداند که آقا یه دفعه ایست قلبی کنه وسط معصیت یعنی چی؟ این مناش که معصیت نکن چون تو نمیدونی کی می میری؟ نمیدونی کجا می میری نمیدونین چه جوری می میری؟ که هرآ طولانی شده. کلمات امیر آقا فوقلا است مست کننده است من یه دفعه زمانت دستم در میره با اون مقدمه ای که گفت حالا میگه که پسرم حواست باشه یه وقت مرگ سراغت نیاد قافل باشی از خدا اما همیشه با وزو باشی یه وقت مرگ سراغت نیاد آقا وزو نداشته باشی تهارت نداشته باشی بخاطر مردان خدا شب که که میخوابند میگن نکنه یه وقت مرگ سلاغ ما بیاد ما با تهارت بر خدا وارد نشیم اینا معرفت اینا میخوان خدا رو با تهارت ملاقات کنند همونطور که شما دوست داری کربلا میری تهارت داشته باشی بعضی گفتن امام موسیع آقا هر کاری کرد بعضی گفتن هر کاری کرد روز آشورا با این دختر سه سالش ودا کنه نتونست این دختر اومد انانگیری کرد کلافه کرد عبا عبدالله دیدین دیگه بعضی دخترها ایب از پدرهاست بعضی پدرها بچه دوستن هستن تو دو دوستای شما هم هستن بچه دوسته به بچه خیلی محبت میکنه من دیدم شما هم بیدی گاه این روز جمعه است میخواد یه نماز جماعت بره این دختر میاد دختر چهار پنج ساله دم میشه میسه درو در میبنده میگه امرو جمعه این نماز و خونه بخون میگه زود میام میگه یه رو میام بیس دقیقهی میام میگه نه همینجا نماز تو بخون گاهی دیدین مادرها مثلا میخوان یه لطفی به این پدره کنن اینو میبرن تو آشپزخونه خونه یه لباشکی یه چیزی به این بچه میدن بستنی مثلا این بچه که مشغول اون میشه این بابای کتشو میگوشه یواشکی فرار میکنه میره که بره نماز حالا اگه به این دختر بگن بابات یه سال میخواد ماموریت بره کار سخت دیگه با لواشک نمیشه که اگه بگن میره دیگه بر نمیگرده اصلا دیگه آق کلافه کننده <تص> <تصفيق> این دختر دید هر کی رفت میدون دیگه بر نگشت اینا باهوش بودن دیگه آقایی خب میدیدن میدون اکبر رفت دیگه نیومد قاسم رفت دیگه نیومد امو رفت دیگه نیومد هر کی میره دیگه نمیاد این بچه فهمید که باباش بره دیگه بر نمیگرده اصلا کلافه کرده با عبدالله بعضی میگن امام همون کاری رو کرد که پیغمبر با دخترش فاطمه زهر بیبی بی هم خیلی گریه میکرد اصلا در مورد بیبی بی پیغمبر نگران شد دق کنه آخر صداش کردید نه این دختر طاقت فراغ نداره گفت دخترم بیا گوشتو بیار گوشتو بیار بیا بیا بیا تو گوشش در گوشش جی جی همین تا گفت بیبی بی وسط گریه تبصم کرد شاید نوت بود نوت روز بود نوت و رو بود کسی تبصم فاطمه رو ندید وسط گریه خندی. زنا اومدن گفتن دختر پیغمبر چی تو گوشت گفت گفت بابام تو گوش من میگه که اونقدی نمیکشه تو به من ملحق میشه گفت اثر این امت بد امون نمیدن بعد من زندگی کنم اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق میشه تو هستی بعضی میگن امام حسین مجبور شد این دختر رو بغل کرد گفت دخترم تا خرابه شام صبر کن ما اونجا میام با هم دیگه میرم میام سراغت. <تصفيق> بعد از اون همش این دختر از اما سوال سآل میکرد شام کجاست؟ نمیشته خرابه کجاست؟ کی میرسیم شام کِی میرسیم خرابه این پدر مهربان من سنادم دارم 20 منزل بعد بشنویم 20 منزل شاید از کربلا تا شام بوده 20 منزل 20 شب اینو خوابیدن ببین توجه من 20 شب خوابیدن شما یه جا نمی‌بینی این دختر بهانه بابا اینجوری گرفته باشه که همه رو کلافه کنه چون میدونست قرارشون اینجا نیست اما وقتی رسید تو این خرابه گفتن اینجا شامه اینجا وعدگاهه اینجا میاده دیگه کلافه شد گفت بذار بابامو ببینم صورتمو نشونش میدن دندونامو نشونش میدن موامو نشونش میدن پای کبودمو نشونش میدم. بدن تازیانه خورده رو نشونش میده خب بابا این کلافه این میخواد باباشو ببینه ناز کنه بدنشو نشون بده جای تازیانه رو نشون بده خب هر کسی میفهمه این خیلی پیچه دیگه نیست هرکی میفهمه دختر سه ساله سر بریده ببینه دق میکنه تاقیق نمیاد الان جلو بچه سه ساله دیدین جلو دختر سه ساله میخوان سر یه گوسفندی رو ببرن مادره میبردش تو میگه این اگه ببینه سر گوسفندو بریدن کابوس میبینه شبا یه مرغی رو میخوام سر ببرن مادره می... تا برسه آقا سر بریده بیارن این نامردا میخواستن یه داغ دیگه به دل زینب بزن اینا میدونستن آه این چیز پیچیده ای نیست هر کی میفهمد بچه نمیتونه سر بریده بیارن. وقتی سر رو وارد کردن زینب اومد جلو، گفت اینو برگردونید من قول میدم این بچه رو ساکت کن با من من دیگه نمیذارم صدا گریش از خرابه بیاد میدم. خیلی معذرت میخوام از امام زمانم معذرت میخوام از شما مذ... بعضی میگن یکی از جاهایی که زینب و تازیانه زدن اونجا گفتن امیر گفته این سر رو باید بیاریم این دختر بیاریم اینقدر با تازیانه زدن این این رو این سینی رو بذارد همین روپوش رو زد کنار چشمش افتاد بسر ببینید از صبح گفته چی؟ بابا رو ببینم پامو نشون میدم موامو نشون میدم ده. اما تا بابا رو دید دید وضع باباش از خودش هم بکره بگه این دختر روش نشد بگه صورتم بگه پام بگه دستم هی صدا بابار بابا رگای تو رو کی بریده منل لذی قطع وریدک منل لذی خذبه که به دمائک یه وقتی در این دختر خ